این جمله ای را که شروع کردیم این بود چه در حق بندگان خوب خدا امیر و فرمود از احیا اقله و اما کن نفسه حتی دق جلیلو و لطف قلیزو و بردالهو لان اون کسیر تدافعت هلأبواب این آبواب سلامه و محلل اقامه این تفصیل مطلب او از این طولانی کردن بس که هر کدام میشن بحث‌های موفی نهی حالا پول دادن باشه این یک کامل میخواد و هم که حال زیاد ندارم که دیر بگردم ولی خوبه مقداری برانی که تل جمله را میفتیم که مقداری گردش کردم یه مقداری چیزاری فهمی یعنی پیدا کردم واجه به این مطلب که یکی از راه های احیای عقل احیا عقله راه احیای عقل هفته گذشته و با اون هفته قبلش اشارتن از کردیم یکی از راه احیاء عقل معرفت پیدا کردن به توحید و شناسی. از توحید و حیات و نفس اگه بخوای زنده باشی به زنده انسانیت زندگی انسانی چیه؟ اون کمال به انسان رو احیا بکنی اون عقلت که از مختصد انسانیت است او رو زنده بکنی؟ باید اولین پایه و اساسش ایمان به خدا داشته باشی نه ایمان لفظی ایمان واقعی و حقیق وقتی توی کتابی دیده بودم رفتود میگیم ما لا اله الا الله میگیم ولی حقیقت لا اله الا الله اگر حقیقتش رو دقت کنی. معناش نسیلا خالقه الا الله ولا رازقه الا الله ولا غافره الا الله ولا محمیه الا الله لا ممیته الا الله و برو تا آخر هر حادثهی در این عالم اتفاق میوفته منشأ و مبدعیش خدای تعالی اگه این توحید را به معنای حقیقیش باور کردی. اگر این مطلب باور شد دیگه پشت سرش منتظر کمالات باش توکل پشت سر همینه اون هفته قبل این دقایتو که کسی که وارد شد توحید در قلبش وارد می شود استقناع در قلبش و آهایی در قلبش آها می شود. من این حدیث را الان یادم اختار برای اون قدیم و خیلی قدیم کندم ولی این حدیث اینه که وقتی که برهیل آمد خدمت رسول صلی الله علیه و آله از کرد یا رسول الله من برای شما هدیه آوردم رسول خدا فرمو چه حدیه را آوردید؟ عرس مثلا من یادم رفته ترتیبش صبر آوردم و بهتر از صبر بهتر از صبر چی آوردی رضا آوردم و بهتر از رضا بهتر از رضا چیه که آوردی تسلیم آوردم و بهتر از تسلیم چی آوردم چی آوردم چی آوردم زبا آوردم چه آوردم هم تو شمون و توکل آوردم آخری توکل بود و توکل آوردم و, و بهتر از توکل خلاصه تمام نشدنی بود کمالاتی که انسان خودشو بکشه به این زودیا یه دونهش هم نمیاد من از شرد یا رسول الله بسنس کردم هفش در تا صفتی کمال عالی زهده آوردم قناعت آوردم یا چی آوردم یا هم جوشمون برد گفتم درجت و زالک کل اطبا کلو علاله نردبان رسیدن به تمام اینها توکلو به خدا الاندال فرمود و ما تبکل؟ تبکل قال العلم المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع این باور داشته باشه مخلوق مخلوق یعنی چی؟ نه انسان ها نه اونها ها نه حوادث روزگاه هیچ مخلوقی از مخلوقات عالم نه به تو میتوانن زهر بزنن نه میتوانن به تو ناس ای برسانن نگر او بخوا این المخلوق لا يزر ولا ينفع ولا یای ولا یم نه نه خلق میتونن چیزی به تو برسانن نه از تو چیزی بگیرن و نه ننفسی و زهری برای تو داشته باشند مگر بهخوااست او لایی ولا یم نه اون پشت سرش ج این کلمه را ررض کرد تا ضاکانل عبد کزلت فلا یه عمل الله الله ولا یاجب سه الله ولا خاف الا من الله. تموم شدیم و دیگه همجور هم شد یکی دیگه چه کمالی پیدا کرده از هیچ دیگه نمیترسی فقط خدا امیدش از همه بریده است از خدا هیچ کاری برای هیچ کسی به عنوان ریا و نمایش نمیکنه فقط برای خدا هیچی چیکار هست که من برای او کار کنم که میتونه به من نفعی برسونه که من به او نمایش بدم چی میتواند زردی از من افغانه که به اون امایش برن؟ بنابراین ملاحظه میبنوایی اون تومید واقعی راست که اگر در کسی بود دیگه فلا یعمل الا للا ولا یرجون الله ولا از مشهد یا الا الله قل الله ممالک الملک توت الملک منتشا و تنز الملک من منتشا و تو عزم منتشا و تو زل منتشا بیدی کل خیلی اینکه على کل شیع این قدیم خب بنابراین حیات عقل انسانی و حیات نوهادی نفسانی انسانی اولش به ایمان به خدا بود اگه خدا درست شد و ایمان پیدا کردی به خدا ایمان واقعی و حقیقی تمام درست بشه یوش یوش بشه جازی آدم خوبا یا بود ورس لدم در اطلافی توضیحات و, و زیاده ولی که خیلی نمخوام تول سر دوبو حیات عقل بشیست بلتکرون الله تعالی ذکرا خالصا تحیو افضل و تسلوکو سرطریقا نجا یاد خدا بکنی یاد خالص تا حیات پیدا کنید بهترین حیات ها. زنده بشوید به بهترین زندهی ها و سلوک کنید و کنید طریق نجات را روایت دیگری در مطلب من زکر الله احیا قلبه و نور او و لبه کسی که یاد کلا باشد قلبش زنده می شود و نور, نور عقلش زیاد می شود ذکر خود یاد کلا باشد ایکی از حیات عقلی. یاد کلا باشد قرآن رو وقتی ملاحظه کنید آثاری را که بر یاد خدا مترتب است علا به ذکر الله و یاد خدا دلها را محکم و مطمئن پس که رو بکرن کسی را ذکر خدا زیاد بکنید لعلكم تفلحون رستگاری شما دارید یاد خدا زیاد بکنید که سعادت شما در اینه آیات شریف قرآن با تذکر خدا من الان یادم رفته چند تا آیه است که این مطلب رو و این فرموده به هر حال اینکه خدا از این چیزایی که به گفته فرمانش قرآن موجب کمال انسانه یاد خدا یاد خدا در تو باید داره که اگر بنده یاد من باشه منو یاد بکنه من او از من چیز نخواد، همین یاد من باشه من به او میدهم خودم به او میدهم از چیزهایی را که به دیگرانی که خواستن ندادم چه بیه من بارد الان دیدم که ننوشتم اگر کسی از من یاد من باشه و ذکر من کند من به اون می دهم چیزی را که نخواسته است به اون می دهم و شاید بیش از اون چرا که به دیگران که خواسته اند می دهم همچین مطلبی دارم سه یه دید تاوز الله تعالی رای از بزرگان علم آرشیه بود و کتابش مشتمله به یک نکات تو لطائفی هست هنگه خوب چیزایی پیدا میشه باید که کرد و با خوب خمومه یواش یواش پیدا میشه این, این حدیثی که من درانه از میکنم تو کلمه سگیر بن طابوس در فلاح و سائل است. من اون رو سگیر در حدیثی است. که رسول خدا سواله واله و اصحابش فرمود بهترین دعاها اون است دعا که من و برادرانم پیغمبران خدا می بوین. بهترین دعاهاییست دعاهایی که من و برادرانم پیغمبران خدا گفتن بعد شروع میکنه یه دعا پیغمبر دعای که تموم میشه اصحاب میگن یا رسول الله این که دعا نبود چی این همش تمجید و تحمید و تکویر و تقدیس خدای تعالی بود چیزی از خدا نخواستی چیزی نخواستی بایدن برسرمود به اینکه آیا خدا بهتر میداند یا از می شود به یکی از عربا یکی از بزرگان عربا شاید مال زمان جاهلیت هم بود چیچی ابن آن، هم چیزی بود من اسمشوی ننوشتم یادم رفتی نمیست آیا خدا بهتر می یا اون عربه کزایی از کردن جا سرخ ملو خدا بهتر می داند فرمودیه بنده خدای حاجتی داشت اومد پیش این عرب کزاری که شیر از آن اومد پیش این حاجتشو نخواست این دو تا شعر بود فقط برای این آقا یه شعرش این بود که از کرو حاجتی ام قد کفانی چه که انشی متکل حیا بود آیا حاجت رو بگم یا من محتاجی می گفتن حاجت نیست خود حیا تو وش خود شرمتو برای من کافیه از کره حاجتی انقد کفامی حیاؤ که این نشیمت که الحیاؤ از می شود به این که هم یه نولدی خط یه خطری هم داره بله ازا قسمی علی ازا قسمی علی کلمر یا من کفای کردنی من از روز حفظ صنا او اگر یکی سی صناعت رو گفت دیگه محتاج بیان حاجتش نیست خب این آقای کیتی ابن جزآنم پرسید حاجت چیه به حاجتش رو برابر دارد رسول و قدران مخادی که تو نه رو به آقایی بزرگی یاد کن نه فقط رفضش رو بگوه یادت باشه همونایی که از کردم لا خالق الا الله ولا رازقه الا الله ولا معتیه الا الله ولا رحیمه الا الله ولا کریمه الا الله این یادت باشه معنیش اگه یادت بود خودم حاجاتتون میدم. ولی اگر یادت بود و تمرین کردی روی، یه محبت خدا زلت دلت پره از محبت درازه یا خیر زاکرن و مذکور یا خیر شاکرن و مشکور همین ایمه که دعای جوشن کبیر داره همین درگه خود یا حبیب و یا طبیب و یا غریب و یا رقیب و یا مجیب همین درگه این هدیسی کنباله اونجا بابر کنه آدم ها اینگه کنه دیگه دیگه دیلش خدا میشه محبت خدا در دلش محجم میشه کسی که محبت خدا در روش محتمی شد دیگه گنابت نمی کسی که محبت خدا در روش آمد یه کاری را که مورد رضای خدا نباشد انجام نمیده این رفت درست ها چه کار هایی تو خدا تو قرآن داره توی روایات داره توی همین یایی دوشن کبیر داره تو عدیه داره در سفات کمال خدا اینهای بخونه و باور کنه و بفنه و باور کنه این کمالی و این نوری و ایک صفایی براش پیدا میشه اون وقتی یاد این کلمه شمی باشه یاد این کلمه باشه که خدا توران رمت فس کنونی از کردو شما یاد من باشه که من, باشه. من یاد شما هستم این هم یادت نره من تمجید میکنم خدا رضا رو من ناچیست اونی که واجد همه کمالات. خب اون چیکار میکنه در حق من اون رو من میکنه این به مطلب خدا یاد منه من به این بیارزی چی <تصفح> پس از کر کن وشکرونی ولا تکفرون یاد من باشید من یاد شما هستن توی دعای ماه وجه من مصابقه بود کندم که از اول شب تا به صبح این ملکی نیرو می از در ماه وجه اسمشم اون ملک که باید داره اسمشم دعاییست از اول شب تا به صبح سلام می زند این الله تبارک و تعالی بود انا جلیس من جالسنی محب من احشاید محب من احب ونی زاکر و من ذکر ونی و از همین همیتر مطی و من اطا از اول شب تا به صبح ملک سرا رو میزنه خب او یاد منه من یاد او نمخواد باشم نمخواد باشم نمخواد خودت میدان فسکرونی از فرکو وشکرونی بلا تکرون آن و كلها. اگه این حالت زد براتون پیدا شد چنون خواهد دل انسان آشب خدا میشه که دل دارن نه مثل زنده این که هیچی ندارین همینه توی داری کلده من کانال هوقل که پیغمبر هست که و دچون اعلمم من تو من عبادت فا کلای دوست دارم نیدونم کنون یکی از دوست داری که منم اون رو دوست داشته باشم تیغمبر ازم کند به خدای تعالی قالتن وارکه و تعالی ازا رعی تعبی تو چیسه رو ذکری ز... اگر نیدونی بنده ای که یاد من زیاد میکنه فعنه از این طوله من به او ازن دادم که زیاد یاد من باشه وعنه اوه تو دوست دارم او رو که او رو یادش دادم و او رو این مطلب به دلش انداختم و الغای کردم که یاد من باشه و ازاره ایت عبدی لای از کلونی که انه تو و انه افت اگر دیدی بنده یاد من نیست من او رو دوست ندارم من او رو از یاد خودم دور کردم همینی که تو باید الا ماشاءالله داریم که از می زنی که بنده ای را که گناه می کنه حلامت ذکرم را از دلش بیرون میبرم برم دوست نداره خدا بنده گناه کار رو حلامت ذکرم را از دلش بیرون میبرم تمام شده و البته روایات بودم نوشته بودم ولی دیگه ندونم که وقت داره می بذاره. اون آقای معروف این بودش که یادم رفته اسمش چی بود؟ گفتش به موسیٰ علیه یا به پیغمبر اصل خودش و برو به خدا وقتی میری در مناجات از کن که خدای فلانی میگوید که من گناه میکنم چرا منو معاخضه نمیکنه؟ کنی از آلم خوبا بوده ها وقتا رسید به اون پیغمبر که برو بهش بگو من حلاوت مناجاتم را از دلت برداشتم پس چه بکنم دیگه با بنابراین از اول ماه از اول ماه رجب تو صبح از شب تو صبح ملک می کند انه زاکر منزه کرنی انه متی اومن اطاانی انه جدیس اومن جالسنی منه یه نفهم اصلا خوش به می دم لایق نیستم صلاحیت موقعی که بنام شد یادم برای خدا اگه کسی یادش باشه خدا که کاراش مواظب واضحه تو روایات ذکر کسیر حتما این نیست که بشین سبحان الله و همه زیاد بگیر برخوردی به محصیت. یاد خدا تو رو باز داره از گناه اساس کار اینه یاد خدا، ذکر خدا تو رو از بدیهایی که راضی نیست خدای تعالی از باز داره بنابراین اگر این شمی شد کار درست میشه آقایی پیدا میکنی، کمال معنوی پیدا میکنی دور از چه این من بیچاره دراج آبادی که فکر کمال خودم هستم چه این فکر کمال خودم هستم بنابراین ذکر خدا کسیرم ذکر خدا عرض کردم نه فقط این لسانی که اصلا توجه دو معناش نداشته باشم با توجه دو معناش و یواش یواش تمرین کردن و باور کردن این یواش یواش محبت خدا رو در دل همین مومنی میفرمه از ذکر و نفتاق و, و یاد خدا کردن یواش یواش کلید خوب دست از خوب خدا تو دل, دل آدم زیاد میشه مناقر این انسان که زیاد یاد خدا کرد خوب بشتر خود به خدا در دل زیاد میشه اگه خدا یادش یادشم یاد خدا میمی کنی خدا تو قرآن مبرمه و لا تکونی که الله نسالله فانساهم انفسه هم نباید که یاد خدا از نظرتون بره که اگر خدا رو فراموش کردی کاری میکنه خدا که خودت رو فراموش کنی نمیفهمی کجا داری میرین؟ نمیفهمی چی میکنی نمیفهمی چی وقتی سر خودت داری در میاری انسان رو فراموش میکنه خیر و شبرش رو درش نمی بدی و خوبیش رو نمیفهمه منابراین این نتیجه ذکر خدا که قلب رو زنده میکنه و فراموشی یاد خدا که می‌رونه از و انسان رو از خودش خودش رو یادش میده چه رو کرده و چه می‌کنه و چه بعد وقتی داره به سر خودش میاره فراموش می‌کنه خودش رو الله ما